و الحمد لله رب العالمين الله على و صلی اللہ علیه رسول الله و آده طیبین و طافرین المعصومین و لات دائمتا علا دائم عذای اللهم اتناجم و رحمنا برحمتک یا رحمه واحدین خلاصه بحثی که دیروز به شخصی که انشاءالا اموزم در بحث تحت عنوان احتیاط بحث انشاءالا رو کمتر کرد این است که اگر در مثل شک در رکوع در حال سجده اگر امام فرمود بلا قدره کرد این ازش میفهمیم که هر جا اثری در رکوع باز میشه باد میشه اما اگر امام فرمود امزه بی سلاسه به قطع بکنه این ازش میفهمید آسا رکوع باز میشه این نکته این دعو مدعا این اول مدعا رو فرماش بفرمین مثلا شخصی نرزه کرده بود که اگر در این روز در نماز ظهر رو انجام داد درکات اول فرانت ها انجام مسئله معنی روزه اکرامزه فرجام داره که خدا توفیق داد نماز رو کو انجام بده صدقه حالا در حینش از صدقه شک کرد که آیا انجام دادن داره او باعث تجاوزی میشه نماز رو تمام بکن درست این بحث نیست این. بحث اینه که حالا که نماز سوال میکنه صدقه رو بده بده نماز به عمل بکو یا نه در نزدش عنوان رکوع او ما دحسون اینه که اگر شاره گفت بلا قدر کرد اینه حکوم محقق شده پس باست نه صدقه رو اما اگر شاره گفت امزد بی این معناش شویست که حکوم محقق محقق بخشت. خب شما محقق این سوال رو کنیم اگر حکوم محقق نشد تو امزد بی سلاته به اصطلاح همون شو قرارم عرض کردن اسطلاح شویستیم تلازم تلازم داره ماده این امرفی سلاته که تحقاق رکوع خب اگر رکوع که رکوع نه در کار نمازه اگر شاره امرفی سلاته پس شاره حسن رکوع رو دیده پس رکوع معفض داده بعد اثر رکوع رو باقی کنه این تمام نقطه فرمی بحثیز این بود که اگر گذر امرفی سلاته آسان رکوع بارده میشه اگر گفت بلا قدره که از آسار رفوع بار میشه اولا من چند بار بنده چند بار تو زن از در مقام اعتبارات چه قانونی چه غیر قانونی همیشه ما به مقدار اگراز حساب میکنیم نه به مقدار واقع قبضه قطعیه این نقطه کلیست و اشتباه این که میدیم که مثلا درانست ها شاره مقدس یا علمه علیه و سلام که به این دو سایه باره ترمید که خب خیلی ن ما هر کمونینه که در اعتبارات قانونی وقتی آباد گفت بلا را کرد یعنی رکوع رو دیگه یعنی چه این رو نباید هم دو در اخبار چون شک در رکوع داریم شک میکنه رکوع کردیم خب اما که دروب نیم کنیم بلا را کرد پس باز به هم در میکنه یعنی من در بیاه اعتبار رو دیگم من دیگم من دیگم قیرازی مهمان داریم که مثل اون حدیث نماهاش را در بیا لانوورس ما ترکناه صدره هست یک چیز دیگه هم سنی ها بعد جرس کرده زبان نوورس چون این اول جرس کرده بعد خودشون هم خودشون هم خیلی توجه هم ندارن دیدن خب یه چیزه مزخره جرس کرده چون این ها ماهاش را در بیا که میشه جمله اینشایی باشه چون پیغمبر که اونخوز حکم انبیار سابقه نبرمیدن اون مع که, مثلا موسا, ایسا بودون که خواهی خواهی ما همین که انبیا مثلا موسی عیسی حضرت اونطور مرضی اموالی که داره اینا صدقه داد بده. تو این شاخص داره شماها نه خائن قوی اخوار یعنی دیانت زایی نداره. خائن های نام اجره انبیا لانه ورده ما ترکنا صدقه باید هم توسط اخوار یعنی از اون در هیچ کدوم از اهل سنت و شیعه و اسرائیلیات و یهودی و نکاب الاحبا نغ نکرن که مثلا حضرت موسی که فرشت لباساش و اموالش صدقه داد. حتی هر که خواست اموال ایشان که دین لذا از این خلأ خودش یک نقشه بی‌محصله تن کارا به واسطه‌ی افاضه در ده. اگر متری باشد یه حدیث دیگه‌ای را باز اول ذکر کرده که ان الله الاه احد انبیهُ توقه خانه برای الامر بنغری. باز این به این حالت انشاء است ان الله اعطى النبي و تؤمن كانت لولي این دقت بکنید در عباراتی که وارد میشه چه در آیات چه در روایات این باید این نقطه ها کاملا رعایت بشه این بلاحضرت اخبار یا انشاء دیگه که این کار را ابراحت حسابات علیه جنبه اخبار از واقع داده خب چه شکلی است اینکه بگی پس قاینه با چی میشه میشه ابداد یعنی امام میخواه من دیدم تو رکوه هم باز معناش این باشید که ایجاد معناش وقتی رکوع رو ایجاد کرد نخواهی هر اثری که در شریعت بر رکوع بود خایدخالی بر بار باشید لابا چونی ایجاد میکنه طبیعت تشریف و, تق... و قامیم گذاری اینه خب یکی از آسان رکوهی بود که اگر رکوه بود صدقه بود, بود. وقتی شاره بود بلاخت برکن اما اگر چیزی خلاصتش گفت دقت کنید این تو رو کو انجام دادی میگه بقیه نماز انجام بده این خود اگر رو کو انجام نده صدقه نماز انجام بده نمیشه این که وظیفهی خلاصه این نکته صرفاً جوابش این طلاسم تو امور واقعی هست نه تو امور اعتباری. تو دقیقا اما این نکته اینه اون آعایی که گفتن آثار رو هست اینجا وارد میشه تلازون رو گرفتن گلشن که؟ نیشون بخواب سشت بکنی؟ نکته ای فندی که آیا تلازون هست؟ بله در واقع اگر کسی که من در کتر اول خودم بره که دوم اضافه در مقام اخبار باشه خب تلازون داره اخبار تلازون داره اگر من اول خودم داره کتر اول کامل خودم, اول خودم, اول خودم, اول خودم که ناقص معنا داره که اگر کسی گفت رکعت اول خود رو حالا برای مثلا اشاره برات دوم هست خب می‌فرمایید که این رکعت اول کامل خونده اما چون اینجا اعتبار امر به تلازم اعتبار تمام نکته فنی اینه. در اعتبارات به تلازم اصل نمی‌کنن حالا این مسائل ممکن است درشون تصورش اجتذائا سنگین بشه شما اعتبارات ادبی رو همیشه در نظر بگیرید خیلی راحت می‌شید مثلا گفتیم فلانی یزدی این معناش که پدرش ماویه باشه. بی عزیز بخواشی پدرش ماویه بود. مادرش فلان بود، ثانی او میثوم بود. مثلا چی بدونین که آقا سامیه اگر گفتید فلان یزید این اعتبارو دیگه. اگر گفتید زید بن این معناشی نیست که تو لیزا اندازی می‌کنه. تو خونم بده، شرایط باشه می‌کنه. منافات نداره عتب بودن اعتباری تو دقت نکته بود. چون شما اشتباهی اعتباری درست می‌کنید. نه حسد واقعی اون حسد واقعی تو نیزا تو عجم زندگی میکنه. نه حسد اعتباری حسد اعتباری تو خونه تو آفارتوها ممکنه توی سرسون حواپیمان تول نه اون حسد حقیقی تمام صحبت اینه در مقام اعتبارت قانونی یک به مقدار ابراز عرض می نه به مقدار واقعی یک چیه امریزی صلات به همین مقدار واقع چیه امریزی صلات به رکو نمیشه این واقعه برد. چون رکو امروزی صلات به همین مقدار در بیاری. اون مقدار چیه این مقدار این است که مثلا شما نماز تمام بکنید آیا ناظر که شما رکو رو انجام دادین ناظر نیستید بخاطر ناظر نیست اصلا نظر نداره اعتبارات هم تا نظر نباشه نمیاد <تصفيق> طبیعت چرا؟ چون اعتبارات واقعی نیستن امور واقعی نظر باشه نباشه میاد اعتبارات تا نظر نباشه نبیاد اگر نظر بود ابراز هم نباشه باشه باشه این نقطه فرمین پس در اعتبارات هم نظر میخواهد هم ابراز میخواهد میگید نظر من این بود که شما رو خوب انجام داشت خیلی خوب نظر شما بود ابراز چقدر کردی؟ ابراز کردیم امروزی سناسی به مقدار ابراز بریم جلو نه به مقدار نظر طبیعت امور این شایینه نه به مقدار واقع میره کلو نه به مقدار نظر و به مقدار ابراز اگر راستی گفتین آقا من این داره ازتون دیگر از بچه شدی که میل او خونه اگر احتیاجش بود بچه ماریش بود نگاه میکنم و ایلا حتی فصل بشه خونی بچه ها رو خوب شده حتی فصل اما همین اصلا تو ذهنتون بود او تو قرار داره خریدم کن نوکل قید نکردی شرط نگذاری تو ذهنتون این بود که اگر بچه مریض بود بشردیم والا برگردونی الله اونی که خونی بچه صاحبمون خوی برگردونی دعای میشی میگی آقا من اصلا این جهت دعای من این بخو شما این بود مقدار ابرازش شما چی بود؟ رو خریدم من از بکر شد من کاری به واقع ندارم اون وقتا ابراز اگر شد اصلا روز بار میشه ابراز اگر نشد اصلا روز بار میشه او شد تمام محکم این تحلیل آنونی محکم چی ما این بود و طور کلی در کل اعتبارات ارض می کنم بحرم. ایتا داشت که یه روزش آسان که مراقب رجر در اونجور پلازم نفت می این آثار این براقت رکم ملازمه با چه جاغوزن رو بوده ما برد ابراز نشده خودش ابراز تاره گفت رکم نه اینکه ابراز نشده بمرکم ابراز که. چما هم ملازمش نه خب ما میشه خواب رکم محقق شد یعنی چی؟ یعنی در هر دلیل ما که بود آر هست دیگه این گفت کلو شیعه تاهیر اگر تو اون رواز گفت این تا سلا بسوره این تارم واسم بش <تزمان> یعنی به عبارت دیگر یه بحثی هست که موازد قانونی به هم ناظرند. این آن یه از اصول پر موزید کل در در دنیا موازد قانونی همیشه به هم نازرند اما نازریش در چه هزیه؟ تاحت ابراد نه واقع؟ خود آدم ازباد از ما نمیشه تلاعیم تلاعیم و قدرار رو کسیم نمیشه تلاعیمش به ابراد این یه تفسیر قانونی هست تمام دنیا دالت شده همین این بحث رو انجام میدن دیگه این ماده قانون با اون ماده قانونی نگاه میکنه اما چی؟ چی به نگاه میکنه؟ سوال. به واقع نگاه میکنه یا به امراض؟ جواب به امراض روشنگ چون نقصه فرمی؟ اگر گفت رو خو اثر داره این با مثال اگر گفت رو خو خلال اثر داره رو صحیح خودش نهرس کرد اگر گفت ام داشت این خلازون هستن قبولن کنم تلازم واقعی هست, واقع هست و اگر خوب نباشه که عرفان نمازه هم هست باسه لا تا حاضر تا بذاریم خمسه که جمع روحوه بسید چون ابراز نکرده خب درکت مگه این نستجی رو کسی معتقد بشه این هر باره که ما میگیم نستجی رو بسید بسید اعنی معتقد نزده رو بگیم بگیم چون ابراز کرده مقدار ابراز چیه؟ مقدار این این در فصالاته نمی‌تونه اشاره به یک دلیل وجوبی توجذب رو اون بده بحث اینه. اما اگر بلا قدرت اش اشاره اون باشه اگر گفت بلا قدرت کرد ادراز کرد رکو رو هرجای دیگه رکو باشه میتونه انجام بده این بعد الان بعد بحث احیا رو هم مطرح می‌کنه باعثش که روشن‌تر بشه یک بحثی دیگه هم برای جواب بگم بحث کرده بحث احیا چون بحث ناقصونه بحث اول الان کامل شد تا اینکه چیزی میشه تکیه نشه از بفرمایید خلاصه خلاصه خلاصه و خلاصه و خیلی یگی داره میشه تو حالا عبارتی که خایه تو بحث اجزا نوشته که اساسه پاره بر استصحاب و غیره ما. یه غیره ما دار یا نحوه ما. اگه ایون نحوه ما نبود یه مقدار شبیهش اون بود یه مقدار. اما چون نحوه ما رو آورده یه مقدار مشکل کرده. تو عبارتی کفایی وقت اعضا ملاحظه رو سنم یه غیره ما نهره ما داره او ما مشکل ما با مرحوم اصاب کفایی در اونجاست استثاب هم ما مشکل دارید اساس صحابه با ایشون موافقت کردیم استثاب نه این یک مطلب یک مطلب دیگه عرض کرده موردی دارم بودیمونم که بلا دارم که موردی بودیمونم که درده اساطو قبول کردیم اساط... اه... توضیح هم داده تو بحث اعضا به نظر ما اساس اینقدر اندرش واضحه مثلا از عجایب کار مرحوم صاحب هدائه و باید کنی هم بالبن اخباره خیلی تو این برسه تو بحث به اصطلاح هدائه ایشون هم همین فهمیده ایشون میگه لاسلا مثلا کلوش این وقتی که مقایسه میشه با مساله به اصطلاح با مساله لاسلا با تهور ناظره اون خیلی عجیبه این هم مثل صاحب هدائ یه بحث ایگه ای هست این بحث هم چون نقطه پنیل ما این بحث رو مبارسی کلام داریم میکنیم ترارات میکنیم بعد از شان دو سه وزیگی ها ترم بیشتر جمع نهایی اون وقت انجام از کردم اگه باشه مبارکتون باشه در موضوعات از که بحث احتیاط مونده هم باید من هم متعرض احتیاط بشم چون احتیاط احتیاطی بگم این بحث ناقص مونه بسانه این بحث کاملی میکنیم احتیاط رسیم یاداش امروز میگیم یاداش فردا. این بحث کامل بشه از کل محنون شیخ در کتاب رسائل که اصل این بحثایی متأخر رسائل ما شد یه تعبیری دارد آمثل امارات و اصول مقام القطع تاریخی. این تعدیری ایشان اینه آمثل امارات ولی اصول این مراد از یا مقام یعنی هنچه قامت مقامت. این صفات محامامه این انطیام یعنی چی شاگرد ایشون که معلوم آشنایی باشن در این شابه جیدی داره موسی فرزند چشترنه در حیواث چون معلوم آشنایی از طرف مسابره توی بینجریه معروف بود به لسان شیخ چون از اون اعواز حدود 20 سال مثلا درس شیخ بوده و خیلی هم به شیخ قدس سلام نزدیک بودن و شرحیشون برای بعض از نکات درس شیخ بسیار مفیده ایشون در صفحه چله هش می فرمایم؟ بله ایشون که لعن المراد من القیام مقامل علم ار رجوع و علی اندخقده مراد اینه قامت مقامل علم یعنی وقتی علم نبود انسان به امارات برمید یا به اصول وقتی علم نبود تبیرشان اینه لا المعاملت معهوم معاملت العلم مراد این نیست اینجا یه شبهه ابتدای انتقشند بعدم رضا بله مازن دو مرتبه البته ایشون از کردن دو سر و پیش ایشون یه منهنا كانت نسخه پی درست درستن است اصل شیخ این رساله اسمش رساله حدیه المقنه بوده بعدا شد رساله و به این صورت قامت الامارات و اصول من غیر ذکر بعض، میگه کلمه بعض نبود از کردن در نسخه ای هم در که من دارن به خط خود عاشیانی که استنساخ فرمی دادن رساله اونجا هم بعض رو بعد اضافه کردن، اول که نوشتن توش بعض نبود، بعض رو بالا اضافه کردن و خط دیگه اضافه کرد. بعضیشون فرمودر فاحمال اولادشون اولاشون مناشیی که ن مطلقا بالا مقام علم میشه. فلهو یا خوون و مبنی ال باد آفی ال من لحظه خیام خیان مقام او، این چون یک یعنی از خیام خیان مقام او به اسلام ی دره عسود یعنی اصول یعنی مهزه و بعد از نرفمالن، یاظهر کون المراد؟ ارجو او المراد؟ ارجا؟ اهل الاعلی؟ اندفاع دل مراد خب به رجوع به اصل خب با اصول مطلق رجوع نشدنده فرد این چه چه اصول تنظیمی چه اصلاح تنظیمی کیشون اینو فهمیدن؟ معلوم آشیانی و معنا کردن آماده لامارات مقام الاعلی شده بعد از اون کنید را کنید و شد این عبارت یعنی چی؟ حامهل امارات مقامل علم یا الاصول این قیام الامارات بر اصول معاملات یعنی چی؟ اینو می‌فرما یعنی اینکه اگر شما علم نداشته شما به اصول یا, یا امارات درغض شده نه اینکه یک عمل معقوم ال علم این. نه اینکه با امارات شما معامله علم می‌کنی. مراد این نیست این, این مطلبی بود که ایشان فرمودند این مطلب ایشان به این موضوع در ابرا صورت نیست این موضوع اما اجمارا در مثل ابرات مرحوم عادیل نه، هست اما به این بود من نسبت نمیتونم بدم به این موضوع نیست مرحوم آیه عاشان سن اصفهانی الله نفسه چون جای وازی نبود ایشون کوپانی بگه الو به در ایشان در مبحث در حاشیه مبارکه شون در کفایه البته خود کفایه هم داره و معنا قیام‌ها بسی اینجا در صفحه شصده نگاه نکنن نگاه کردن در صفحه 62 ایشون میگن تهینه بله، بله، آیات این بله باله لمن آیات آیاتو نبایدن تا دل منزلت الوه. خوب نگاه کردن. ايشون یه مراد یا مقام یعنی تنزیه و منظره الواقع و معاملات و معاملات العلم اما این مطلب رو در صفحه 63 در ذیل عبارت کفایه و وضوح ان المراد من قیام کفایه و داره به کلی اجمال در زمان نسبت ایشان نمی‌سن بده ایشون مرحوم آیه اصفهانی اینطور میفرما بل المراد من قیام شیء مقام القصد انما ما هو القیام من هیئت المتعلق به معنی قیام معدل اماره مقام اللاغه یعنی اگر زراره بخمتن گوشه خرگوش حرامه سیگار که مبارکه هر رو علیتون در او قیام نسل اماره مقام القرص تنجز و تبه ما قیام الاصول مصلقه مراز محرز باید شبیه کلام آشیانی مقام القرص لعنها المرج بعد فقدر این ببینید ایشون یه. تفسیر قیام به معنای فقده لاغ از و از حقیقت تا قیام شیعه این مقام القد قیام به ما من ال و ال احکان. یعنی این قرد باشه لا مجرد رجوع علی بعد فقده این مجرد رجوع علی بعد فقده مراده از قیام نیست پس بنابراین یک مطلبی در حقیقت بعد از شیخ مطرح شده. که مراد از این عبارت شیخ چیه طبعا ما کاری به عبارت نداریم بحث خود مطلبه و آیا اصولا مراد از قیام امارات و اصول مقام علم یعنی بعد پخدل علم داره یا نه همون معامله ای که ما با قرط میکنیم با امارات میکنیم بحث قیام مقام مراد اینه دقت بکنیم مراد از قامت مقام چیه در باب حالا کلام مرموم آشیانی در باب امارات خیلی واضحه توش اخذ علم شده کلوشه علم که حلال حتی تعلم و حتی تعلم کل علم نویف حتی تعلم مشکل اینه که در امارات حتی تعلم نزده نظر مدن مثل خبر آدل حجت اگر علم نبود حتی تعلم و لیونزل مع بلکه اگر بلکه زاجری حدیث معلومه که در باب حجیت بگیر اصلا او در عرض علمه، بلکه تقدیر نیست. این حدیث گالان کنن، هنیت مثلا اذن این لکه تعرف حرام اینه من وظاله که مثل سو و علی اله الیهود مبینید کلها اله هادا حتی لکه قیر و ان به این یستدین علم همه خطیقی به قدیدید بیانه ولی اماره حالا خب بود منو آیه حدیث نارم. بهتر بشید. گفت دنبال پلس این این معین کلام آشان خیلی واضحه دیگه حتی یک ترین که غیر زاله که یعنی علم اون به بهال بجنه رتبه نداره ظاهرش اینه که بجنه با, با یک در یک یا بجنه یا علم نه گفت اول علم مع فرز علم بجنه اول علم با فمد علم بینه این محلت نیست. نزید از این مطلب یه بحث دیگری رو به دنبال داره ما اینجا به مناسبت این نقطهی که الان داریم وارد این بحثش میشیم و اون بحث دیگری که به دنبال داره در محل خودش انشاءالله متعرض میشیم تقیید که مرحوم استاد هم ظاهرن حالا یه میتونیم نسبت هم بزنیم بیشون ظاهرن مرحوم استاد هم برنامه‌شون به اینه که باره اند فقدل علمه این در این صفحه شر از این اصول اصول چاپ جدید در این دوره جدید که شما در کلاس پوشش نشه در اصول اصول صفحه شر اینو بندند و توهم انه توهم و قد اخل فی موضوع الاصول اشاد فای کیف ممکن اعتبار علمه علما بس مفعون بأن شکل المأخوذ فی موضوع الأصول بله خب شکل قل وجدانی برای علم تعبدی و الهی دادن بله بعد ایشون یه نکته دیگه ای زدن در صفحه یک حالا ملافان الا انه لو كان هذا مانعاً مقام القصد لمنع عن قیام العمارات ای مقام ما مقام ایشون مثل که امارات رو هم مثل اصول طولی گرفتن اضلاف هر قدید اصول و امارات منها به جهن از چه چه از جرد که در هر دو اول علم بعد امارات رو پرکید کن اون, اون حدیثی که خوندی طولی نیم در هر در من. اون حدیثی که خوندی مرموم آشانسل هم حرفش همینه که اینا طولی نیستن روشن شد ایشون میگه لا فرق بین الاصول و الامارات منها بهده فه این الامارات ایوان قد اخذتی موضوعها از شهر عدم و البته خب ایشون که فقیق و اصولی بزرگوار یعنی در فقیق شده از ادلی امارات شک گرفته شده اصول چرا؟ ها، نه شده برد میفهمن غایت الامر ان الاصول قد اخذت شک پی موضوعها فیلستان دلیل لغزی مثل کلوشین که هر حب تعلم و فی امارات در ثبت زالکه به دلیل لبی به حکم احل. ایشون میگه در امارات هست به حکم عقل بعد یک بیانی دارن که اینشالله هستم اون بحثی که خادمه در اون جمع میشیم که اینشالله از اون بیان ایشون کامل نیست حالا بار اون بیان میخواد بشین. بعد ایشون آخرش هم فرمه در صفحه هذا مضافن ال آنهو که آخه شک در موضوع بعض امارات، فی لسان الداری ایران. امروز از امارات لسان دلیلشان که شده. اهل این کنتم لا تعلمون این کنتم لا در اهل این استدلال ایشان. بین آیه این کنتم لا تعلمن. اصلاً که بله ان شاء الله تعالی به نظرم در این کتاب صفحه 220 باشه وقتی نگاه کردم بله بعد. بعد در صفحه 220 ایشان در صفحه 219 از همین چاب آیه مبارکه فصل و احلزه این کنتم لا تعلمون ببیانات و الزهور بعد ایشون در یعنی چون این آیه تمثیل شده برابر خبر واحد از بایه تمسل شده برای حجیز خبر واحدیه برای حجیز فتای فقید رو برای حجیت به اصطلاح قول اهل خبرشون ارجاعشون به اهل کتاب سه و تمسل شده بین آیه باره که برای اصمت اسمت علیه مستلام که در روایات ما آمده ایشون در بحث به اصطلاح حجیز خبر واحد این آیه رو ذکر موزن و می که بله بعد از اینکه که جواب میدن از اینکه که آیه رفتی نداره بعد نهاد و مضافن الان مرد حاضر ال آیه ایزان هیه نبوه مرد آیه اصلا نبوهته و المعمرونو به سؤال هم عوام الیهود عوام الیهود هم یهود گفتن و خبر الواجد و ایتونو خودتن پی گصور دید کما تغفت هم این آیه مربوط به نبوهته و مربوط به اینه که عوام الیهود برن از علماشون سؤال بکنن چینیه این مورد جابریه که انبیا سابقین بشر بودن خدا مثلا ملائکه نبودن آیا من فرسد و اهل از شما که سرفضی میشه ببینید از مثلا علماستون بپرسین علل که این علما یهود احبارند و خبر واحدتون آوردن که اصول دین کاماتقداً خب اگر این آیه این واوره که مربوط به عوام یهود باشه و مثلا نبوت باشه چطور شما در جاوردین در این صفحه 42 ان کنترل الله تعالیمون از خیلی هم بعید میدونیم که ایشان این آیه مبارکه و حجید خبر واحد قبول بکنن خیلی بعیده الان در صفحه 42 در موضوع امارات ایشان گردن که ای خبر واحد باشه که خیلی عجیب از ایشان و عجب از جواب بعدی ایشانه در بحث حجید خبر و یو نافیداله که ما اصلا ازده از رباهاتو صحیحه داریم از از ایمه نه از یک امام واحد من ان مراد به اهل الذكر هم الاهل المعاليهم السلام روايات مخصوصا اینها رو مرحوم های جوجی قدس الله روح نفسش در اول جامل ال چون شده که از خوب جامل جامع ال خود سیفو داغوردی نظر برکهشون بود در هر بابی احادیث بندی کردن خیلی راحت بود اینجج مثلا فرض تو باب وجله خبر کل روای کل روای 11 اایه و اهل ذکر یکجا آورده ایشون همرو یکجا آورده ایشان. مثلا چون چنین باب صد تا روایت 8 تا 9 تا تفسیر فصل اهل ذکره اینا رو مثلا پشت سر هم آورده مثلا 8 تا 9 تا این نواهی اصولین نرساد اینا رو همه رو مثلا این حدیثنا یا امرنا تابع این منظوری که حدیثنا یا امرنا تابع مستثاء همه رو پشت سر هم آورده اگه اصلا خوب آموزش دیدی ایشون نظر مبارکشون در بابه جمع احادیث اینجوری بود و خوبه انصافا کار خوبیه چرا به هار موسه آورده ممکنون ممکن در یک باشش تا را آورده حدیث اول و هشتونو و پنجم و همینطور چهل و همچنان پنجوی یک مجموع باشه. ایشون که کاملا موسه آورده در لطفا به هم. مربوم سال و ساله بلهاده سه تیسانه دارورده. مثل این حدیث فصل و عرضه که ممکن هشتونو که بعضی سیوستن، بعضی زایبه. سیویش اول داره زایب و شو آخر باب که خیلی این جهادمون را آسنا کرد. آی در که یک باق اینه که شما اگر به جهان اهالی سنن این کل روایاتی که در ذیل فصل و اهل الذکر یک جا آورده دلیل راست تو هم باب حجره خبر تمام رو یک 9 8 10 تا 12 تا پشت سر آورده صحیح سند داره نداره مرسل تمام رو یک جا آورده آیانتم بود کتاب مراجعه کردن که از این جهت خیلی نافعه بعضیشون فنداله نافع که موافره اخبار بعد لان اهل الذکر جواب ایشان عنوانه امن یشمول بله رایعتر به اختلاف موارد یعنی مقام اثبات نبوت خاصه به موثق الله نبيعه في الكتبه السماويه يا يكون المراد من اهل ذيك علماء الیهود يا علماء اليهود النصارى ولایسه ان یراد فی هذا المقام در باب نبوت پیغمبر بله و اگر یراد فی المقام الاهم علی مستدل است ان امامه فرع النبوه نمیشه که به امامت جون برای فهمیدن النبوه فکیفی هم که اصبات نقوبه به سوال عنه امام الهی تصفت و امامته به نصد من النبي صلی الله عليه و عالی نه بعد اثبات نقوبه و امامه یکون الهیمه علیه مصلاف اهل الزک فلا من من هم منهم مایت علاقه در احکام شرعیه یعنی رجوع بشه به اخوال اون هم کما انه اهل زمان قیبه همون روا آلا این زمان القیبه هم می فهم مرادشون چی درواز مراجعه از زمان رسول اللہ برواز مراجعه از زمان همه برواز خیلی عجیبه مطاله که شون فهموندن که یه گفته جامجا نخشوند کما انه اهل زکی زمان الغیبه هم روات به نصف الالفقه ها و الفقه ها به نصف الالعوام و المعنی واحدون پر جمیع انم الاختلاف پر المصادی در حسب الموارد خیلی عجیبه کلام صدرن و زیله و اصلا تعابیر خیلی عجیبه از در روایات ما تشریح داره که مقصود اهل ذکر ما هستیم مورد اهل ذکر قران و نهول لذکر لکی اللهم اهل ذکر اهل قران اصلا تورات نمیشه مراد اهل ذکر باشه اصلا تشریح داره که اگر شما رو جو بکنی به های یهود حتی به تعبیر استاد در نبوت خاصه میگه بعد بله در تورات حتی کلمه محمد (ص) براش چیز دیگه‌ست مثلا میگه موسی یا این توی نسخهش شده چون ولای وقت یهودیه قائله اون آیه رو شما بخونه اون رو حتماً توضیح میکنه دیگه این طبیعیه دیگه امام میگه این مراجعه از ذکی یهود بجو ما رو ذی یهود میکنه معن همین به حساب اجازه احسان بده این که نبوغ امامت هر ام نبوت چه چیز عجیبیه خب ممکن است امام وجودش جوری باشه که توحید رو ثابت بکنه نه نبوت و رو و یاقول الذین کفروا لست مرسلا حدیث آیه مبارکه است که کفار میگن تو پیغمبر نیستی قل کفاب الله شهید در بین را بینکم ایشو خدا شاهده و من یندهو علم الکتاب بونم شاهد دوم کبیر و مؤمنی گه توره واسه سنیان روایتون که الا ماشاءالله و من یندهو علم الکتاب این که نبوت امامت فرع نبوت است عجبلی میسوزید بس اگر ثابت شد که مراد اهل ذکره دیگه شامل ربات و علما و یهود و اختلاف مصادیح و اینا نمیشه مثل آیه حسی اللہ و حسی اللہ رسول اللہ امینکو حدیث صحیح داره نزلت چینا خاصه تعدیر اینه نزلت چینا خواسته مومنی هر اهل کتاب و یقول الذین کفر که سمیدی خب فوان مخاطر خب رقایات اندل ایساون شده مکتب اهل بشند ببینید عزیز من سوال اصل از خود مرحوم شیخ هم داره اصلا در اینجا نکته سوال مطرح نیست نکته اساسی حجیت و حقیقت قول اونهاست میخواد شما سوال بکنید مخاد نکنید مضوغیت به سوال الغا شده این مضوغیت به سوال برای فهم عرفیه ولا سوال تو شما سرده علیه حال این که رومات هم در زمان غیبت تو اون معناش فرق یا فقها این که احمد علیه و سلام ارجاع به فوقها هم زدن خضره در زمان خودشون. اله ماشاءالله. قدر از برحال نه مطلب ایشان رو در اون سفره دیویست و نه مطلب ایشان در صفحه چلو دو رحمیدیم. اصلا مکه که در بحث مطرح نبوشه. اصلا مکه اهل مراد از احلی به دو مهمست کفاب الله شییدم بینی یا بینکان من اندهو علم و اهل بیت بخصوص مثلا امام صادر یعنی از همون اول امیرالبومین هم شاهد بر ربوبت رسول الله یقون یعنی رو لزینه کفره یکی سریع آردی برش کدار که و یقون رو لزینه کفره البته خود سونیان نشان من اندهوی الملکتاب یعنی مثلا کعبال احوال یهودی رو یکی یه حالا اگه برشت شده میشه توی یک فتر وحزه که چون بخت ماه سمون مجبورم د پس برابرین این که حضرت و قصد قدسها لاسره فرمودن تو ادله امارات در دلیل لفظیش عدم العلم آمده که رتفه درست بکنه انصافاً ما به نظر میاد حق با مرحوم محقق اسفانی قدسها لاسره این مراد یه حوم و مقامه و تکتیب و آثار علمه حالا ایشالا بعد توضیحش رو بعد عرض میکنه. بله هم اون که بله هم خود مطلب. مثلا کاشفیت فرق نمی نکته کاشفیت فرق نمی کنه فرق سوشی خب خوب بود خود استاد توجه رو می فرندن. در کلیه ی عدلهی آمده به عنوان حجد خبر تو توی هیچ کدومشون افضل علم نشبه به خلاف عدله اصول کلوشه این لکه حلال حساسه علمانه معرامه کلوشه این نظیب حساسه علمانه و قدران این خیلی واضحه مثلا مثلا در اون ادله که داریم مثلا پس قطعا پس الان و میلions رقیم هم اداره جو عليهم لعنت هم يحزرن اين لعنت هم يحزرن اولين بیای سعیاً دزانت کلام این منذری بوده بودیم این چه باتانه بودن؟ آقا يونس الرحمن سعی که تماشا کنم بیم آقا و آنها معلم دینی اینه اگر ایر نبود از چی میکنند آنها؟ منشین بگه لبه لوبه؟ آخه این همه روايا قال از امیری و بنویس سگتان که موعد داده یا علی فعده یا خش معلهم و آقای همافین نه بعد فرد القو خلاف ظاهر است چیش کردند؟ خیال مذاهی است این اغلبیه می کنید که دل اغلبی بحث تقدم نیست دقت کنید بعضی که اگر شما زن به خلاف فرد که اینکه پیدا نمیشه. اون بعض اصلا اصلا سر کاشفه روی مبوعی ما که وازهه شد بر اون هم روی ممنوعی خودشه. چون م شما رو بوده ن ذاتی ذای نمیدونن و بلایی میدونن. بعدا ما بودیت کل های تبدی نمی بینیم اون با می بینیم هرزار درانهای واحد مییم ما خیلی واضحه اینجا اباف نداره. این عمل کلام اون مبانی آیان بدار رو مبانی ما خیلی وازهه. و یکی از شواهد بلی که این مثلا همین شما در, در ادنبه امارات اصلا مثله ادم این و زن و اینها و اینها رو نمیبینی ایشون هم گرشتن پس اهل از ذهن کتون لا این آیه مبارکه واضعی که در روایات ما تصریف شده در روایات ما نه یکی. من خیلی سپرم ده دوازه سر و ترام که اونی سرکم که محافظم یا یا خراب شده شود دو ده دوازده تر وایتی که و زیگی هم داره، سنت پیش داره. <تصفيق> میگه فعلی نه سوال قال نه. اون تو فعلی کمون جواب قال الله. ها. راکه علی نه این شنا اجتناب این شنا امتناب. <تصفيق> شاید مجبوریم وایتی که کامپیوتر آن دارم نگاه کنم جاله هدیشون پول هم هوره. شاید مجبوریم ده دوازده تا وایتی از ما بیش از از از دل هست. فکر می کنم از رزان سرسلیم و اصلا سوال میکنه. علی علیه نه سؤال قال نه علیه کبول جواب قال الله ما رو در نظر میگیریم، حساب می که اونجا ما در دهت وجود خبرواند اگر آمدیم این بحث را مطرح کردیم که آیا این منفر هم برای فقید ثابتی یا نه آیا فقید هم همدار این کار بکنه مردم به سعی مراجعه بکنن سوال از او باز بشه. اما جواب رو ال ات ال انشارجاب رو اینجا هم امسکو آیا این, این, این منطع امام هم به سوعال رسیده که اینا ملاحظه ملاجزه بکنن و اگر صلاح معدن خطوا انند. پس حالا این مطلبی رو که م آیا آاش می گفتن و استاد دیگه خیلی تطیفش فر بودن که رشد بندی داره اناف اما موا ها رو بعضزار شدهثر بی جمعنده میکن، کاملا واضح میشه انصافاً اثبات این مطلب مشکله و هم ما با مرموم آشانسین اثباتی دارم که ایشان خب با آره خوی اختلاف مهمون ها دارم خوبی آره خوی و ذاتی و عقلی میدونن مرموم آشانسین اغلایی میدونن این با هم دیگه اختلاف دارم پس مراده از مقام یعنی معامله این باشیشه نه این دفقده این در لسانش عرض شده باشه اصلا چین نشده؟ در هر دو کاشفیت هست و حجیت به هر دو می خوره طبق ثوابت عقلایی اینطور نیست که یکی در طول دیگری باشه ببین بحثمون بر هم با اتفاقی فرض بشه بحث ابتداش اول که گفتم اشتباه نشه تو نوشتم اول ترتیبا تمام نشه این بحث دوم لذا احتیاط عقلایی فرضاً انشاء بحث احتیاض یه توزیع عرض کنم صلی الله